شرکت تالک ایرانیان از سال 1389 به عنوان اولین تولید کننده قوطی های آلومینیومی دو تکه و در پوش های آسان بازشو با فناوری پیشرفته ژاپنی در خاورمیانه فعالیت می کند. این شرکت با 150 نیروی متخصص در منطقه صنعتی سفیدرود رشت مستقر است. با بهره از دسترسی به منطقه آزاد بندرانزلی، انبارداری مناسب و چاپ هشت رنگ پیشرفته اوتی هایی برای نوشابه گازدار، آب میوه، چای دمنوش، نوشیدنی های انرژی زا و دوغ سنتی تولید می کند و به بازارهای داخلی و کشورهای همسایه ارز می نماید. بابک تشکری مدیر اظهار داشت که تالک ایرانیان با سرمایه گذاری کلان تاسیس شد تا نیمی از نیاز داخلی به بیش از دو میلیارد بطری نوشیدنی را تامین کند، نیازی که پیشتر عمدتا از طریق واردات با خروج ارز زیاد تامین میشد. فناوری پیشرفته این شرکت قوطی‌های سبک و مقاوم تولید می‌کند و فاقد فاضلا به صنعتی آلاینده است. این فعالیت برای 220 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. شرکت به صورت سهامی خاص فعالیت می‌کند و در رشت مستقر است. سرمایه ثبتی آن 21225 میلیارد و 961 میلیون ریال است که در سه سال اخیر تغییر نکرده و نشان دهنده مدیریت پایدار است. زیرساخت های لوجستیکی قوی و چاپ پیشرفته امکان پاسخگویی به توازه متنوع را فراهم کرده است. تالک ایرانیان دو کارخانه دارد، یکی برای قطعات آسان بازشو در سفید رود، رشت و دیگری برای قوطی‌های آلومینیومی در منطقه آزاد انزلی. این شرکت جوایز صادرکننده نمونه غیرنفتی و نشان کیفیت ملی برای بندی دریافت کرده و پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، گواهی استاندارد ایران و مجوز زیست محیطی دارد. مدیران شرکت شامل بابک محمدی تشکری، رئیس هیئت مدیره و مدیر آمل با فعالیت در خیریه بیمارستان رازی، پوشش آلومینیوم کاسپین کیان و تولیدی متهر گیلان و همچنین علی محمدی تشکری و لیلا هنرور قصاب به عنوان اعضای هیئت مدیره هستند. تالک ایرانیان تسهیلات قابل توجهی از بانک صنعت و معدن دریافت کرده و ضمانت نامههایی با مبلغ ناچیز دارد اما فاقد اعتبارات اسنادی است. مطالبات تسهیلات نشاندهنده نیاز به مدیریت دقیق دقیق‌تر است و فعلا در بانک تجارت فعالیتی ندارد. شرکت تولیدی مطهر گیلان مرتبط با مدیران تسهیلات متوسطی از بانک کشاورزی دریافت کرده با مطالبات قابل توجه و منابع ناچیز در بانک تجارت، شرکت خیریه بیمارستان رازی و پوشش آلومینیوم کاسپینکیان اطلاعات بانکی ثبت شده ای ندارند. تالک ایرانیان برای کاهش هزینه تولید درخواست تحصیلات کلان از بانک تجارت برای واردات مواد اولیه از چین کرده است. این شرکت با فناوری پیشرفته، صادرات و کاهش وابستگی به واردات، نقش مهمی در صنعت بسته بندی ایران دارد.